اللهم صل على فاطمة و ابيها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبارثمون در حل بود در سرکه بود سرکه طبیعی حالا انگور اسکری یا سرکه سی. به عنوان یک زده تسلب شرائین به عنوان یک رسوبگیر به عنوان یک پاک کننده آلودگی های میکروبی و باکتری از دستگاه گوارش لوزه ها و مانند اونها حال اگر شخصی سکسکه های پشت سره هم زیاد داره که حالت انقبازات دیافراغ نه چگونه توان سکسکه شخص رو بند بیاری اینجا اگر یک قاشق چای خوری سرکه طبیعی رو تو دهنش بیگیره یکم با آب دهن که قاطی شد قرغره کنه بعد بده. سکسکش میاد درمان سکسکه یه قاشق چایخوری سرکه خالص سیب بخوره سکسکه سریعا رفع می شود کسانی که آرام کننده دردها به نوع طبیعی می خوان وقتی که بعد از زورها از سر کار و تدریس مثلا درس تحقیقات برمیگرد این منظر احساس خستگی در ساق پاهایتان میکنه کمی پااتون رو سمت بالا بزنید مثلا متکا بزن زیر پا و با سرکه سیب پاهای خود رو ماساژ بده حال اگر کسی دردهای خفیفش رو بخواد آروم کنه از جمله سردرد از جمله درد عصبی از جمله درد ازولانی اسپاس ما ازولانه. یا دیگر دردها حالا میتونید تنتور یعنی تروب کوهی تنتور یعنی تروب کوهی آبشه بگیره روی تنبه بریزه و روی محلی که درد میکنه بماله اگر این کار رو قبل از خواب انجام بده دیگر دردها یا دردهای ازوله در التیام و خوب شدنش بسیار موثره اگر کسانی جوش های چرکی دارند و یا اینکه زونا و یا اینکه زخم های آکنه دارند برای درمان آکنه میتونید از همین روش استفاده کنید میتونید از همین روش استفاده کنید هم مسکن درده هم آرام بخشه و ضد های التهابی اگزما سوختگی و بقیه مسائل مثل خارش پوست خارش سر توأم با دونه یا بیدونه برای تهیه مسکن درد به نوع طبیعی از تنتور که ترب كوهیه 500 گرم تروب کوهی سایده شده ساید شده تازه رو در ظرف شیشه ای می میریزیم. روش یک دوم لیتر سرکه سیب طبیعی میریزیم درش محکم میبندیم به مدت دو سه هفته در جای خونک و تاریک قرار میدیم بعد از اون مایع رو از صافی رد می کنیم بعد استفاده می کنیم به محل درد کسانی که سرماخوردگی هست مثل فصل پاییز و زمستان یا این که رعایت مسائل ایمنی فردی یا اجتماعی نمیکنه. سر بدنش خیس عرق میاد یا جلوه کلر یا پنکه یا سواره چرخ و موتور میشه یا سواره ماشین میشه. در حالی که شیشه ماشین پایینه. اینجا هم کیپ بینی میگیره هم آبریزش بینی هم سردر هم آبریزش اشکریزیای بیمورد چشمی ممنان هم دچار سرماخوردگی و تب میشه حالا اینجا رفتارش با خودش منفی و جاهلانه و قافلانه نباشه حالا درمان اینها درمانها مختلف مثلا اگر در اثر سرماخوردگی یا التهاب سینوس فوقانی کیپ بینی گره حالا اینجا بخور آب سرکه بخور آب سرکه کیپ بینی رو باز میکنم همچنین بخور اوکالیپتوس هر 6 ساعت 20 قطره تو دستگاه بخور بریزی کیپ بینی باز میشه شوشات هم از حیث حبابچه های هوایی ریه و برونش ها متصع میشه دریافت اکسیژن راحت اگر کسی علاوه بر سرماخوردگی و خردگی دردهای هم درفته یعنی ویروسش به نوع ویروس آنفلانزاز حالا چه آنفلانزایه؟ عادی مومنا چه آنفلانزایه؟, چه آنفلانزایه؟ <تصفيق> <نشهده>؟ <تصفيق> یعنی بیماری سارز هر دو بیماری سارس. حالا اینجا هم از بخوره محلول آب سرکه استفاده کنه هم عسل رقیق شده صبحگاهی و آب سیب شامگاهی بخوره اگر علاوه بر اینها دوچار مفصل درد توعم با درد مغز قلم و استخوان باز چکاب میشه آیا علاوه بر سرما خوردگی و آنفولانزا آیا روماتیسم هم داره یا نه و روماتیسمش قلبیه یا روماتیسمش مفصلیه حالا همه قبلیه رو باید رعایت کنه به اضافه اینکه هفت عدد آلو بخارا و, و یک استکان تا یک لیوان آب انار شیرین بخوره هم درمان میشه روماتیسم مفصلیش هم کمک میکنه به درمان روماتیسم قلبی درست مومنه پس این بخور محلول آب سلکه که گفتین و بخور اوکالیپتوس که گفتین درست گرفتگی بینی کیپ بینی خوب میشه اما خواص دیگه هم داره کاهش التهابه و خلط اضافی رو از بین میبره و خودش خلط رقیق درست میکنه و ضد باکتری هم که هست پس افونت های باکتریایی و از باب پیشگیری و یا درمان نقش حال اگر عدابه بر ضد باکتریا و ضد عفونت و چرک آنتیبیوتیک طبیعی و پنیسیلین طبیعی خب آب سی به شامگاری گذاشتیم بعد پنیسیلین طبیعی آب شلغم یا شلغم پخته یا بخار پزم بین روز یا اسرونه میخواد. تماشون. تو بحثای دیگه مؤمنان بعضی ها خانومشون یا دخترشون یا عروسشون تو دوران بارداری تو نهما ماه انتظاره حامله است حالا گاهی یک مسائلی در ضمن حاملگی هست مثلا ترشوهات اضافی دارن در هنگام حاملگی با اینکه که کیسه که توش بچه شناوره که میگه مشیمه روایات میکن انگلیسی ها میگن کیسی آمینیان که توش مایه هست مومنان بچه تی این مایه شناوره خب این کیسه سوراخ نشده یا پاره نشده تو حاملگی یک مقدار ترشوهات پایین تنه زن حامله بیشتره حالا بخوایم ترشوهاتش یکم کمتر بشه میتونه سرکه وقیق شده رو، یعنی یک لیوان آب دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی تو یه لیوان آب هم بزنه بخور و پایین تنشو با این محلولی که گفتیم ما شستشو بده یا اینکه این نوار بهداشتیش یا دستمال تمیز نخی یا کتانی که تمیزه اینو آغشته کنه به سرکه سیبر و همون قسمت بگذاره تا اینکه نیفته میتونه یک شورت هفتی بوشه که خوب اینا نگرد ترشحات اضافی مهبلی قطع میشه حالت های بدبوئی پایین تنه هم از بین میرود در دوران بارداری استفاده به این یک مقدار توصیه شد حتی یکی از خوراکی های خوب همیشه از جمله در دوران بارداری چیه؟ مصرف سیب رسیده شیرینه چرا؟ چون در دوران بارداری قالبن زنها حالت تحوه دارن بعضیشون هنگامی که اخخاب پا میشن تحوه دارن بعضیشون هنوز یه مختصری آشامیدنی یا غذا خوردن نخوردن تحوه دارن اغزدن دارن و یا استفراق اینجا سیب درختی شیرین ها یک داروی طبیعی ضد تهوه است. میشه با عنوان ضد ویار ضد ویار زنان حامله استفاده کرد چون که در دوران قاعدگی، دوران حاملگی و دوران شیردهی یکی از عوارضش یوبوسته پس تفاله سیب رو نمیگیم بخوره پیاره شو نمیگیم بخوره چون هم نفاخه هم یوبوسط میاره آب این سی به رسیده رو میگیریم یک استکان بعد هر غذا بخوره هم زد تهوه هم زد ویاره هم کمک به هضم غذاش میکنه هم خونسازه هم تبره هم آنتی بیوتیک طبیعیه فقر آهنش از اشت خونسازی کم کم چی بهبودی پیدا میکنه و ماننده اینها بینام که حاشی زدین دوتا دیگه حاشی زدین اگر ویار این خانوم شدیده و هفته یکی دو بار بیمارستان میره حالتهای ارجانسی که سروم وست میکنن که با مادر سوء تغذیه نگیره وزنش کم نشه ریزش مواش زیاد نشه دندناش خیلی خورد نشه به خاطر فقر کلسیم و فسفا و همچنین رشد جنین در رحم کم نشه چون اگر در ماه دوم و سوم حاملگی رشد جنین کم باشه بچه سقط میشه هم خدمت به مادر بشه که به خاطر تعداد ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری زخم مری نگیره و تو زدن علاوه بر شیره معده خون بالا نیاره و هم کمک میشه به بقای جنین در رحم مادر به نوع سالم پس اینجا بعد از هر غذا یک استکان آب به تازه شیرین طبیعی به خانم میدیم حالا قبل و بعدش هم با فاصله مثلا قبل از غذا سوسنبر یا چای نعنا فلفلی یا سبزی سوسنبر یک دسته کوچیک اینو می‌ذاریم توی استکان روش آبجوش جوش می‌ریزیم که 5 دقیقه 10 دقیقه باشه درش میاریم یک می کم فشار بدیم بعد این مایه احسوس رو قبل از غذا میخوره بعد از غذا که یه استکان آفسی بشه خرد یک کم قدم میزنه بعد میاد نصف استکان عرق نعنا میخوره تهوه عغ زدن خوب میشه این هم معامنا حواشی ما بر این کتاب اگر تصادب شرایین بوده یا قلزت خون بود یا دیابت هنگام حاملگی بود که گفتیم که سرکه رقیق شده رو در یه لیوان آب بخورن دو قاشق چای خوری یا یک قاشق مرب بخوری سرکه سیب رو در یه لیوان آب هم بزنه بخورن این هم ماله اونا اگر کسی هنگام کسالت و حالت تهوع دوران بارداری دستمال یا در سرکه سیب گرم کنه خیس کنه روی ناحیه معدش بگذاره زن حامله وقتی دستمال خنک شد دوباره این عمل رو تکرار کنه این هم ضد تهوع اما به نوع ژو و پماد یاداش بفرمایید احتمال نیست بحث دیابت بود حتی مؤمنان تو کتاب داره تو کتاب های جنین شناسی و بقیه مسائل که اگر مثلا حضرت خانمی در طول بارداریش محلول آب سرکه بخوره به نوع متعارف صحیح در طول ایام بارداری این بچهش اندامش درشتره و استخون بندیش محکمتر تر وقتی هم به دنیا میاد معلومه در, در کسی که در تمام طول بارداری از این نوشیدنی مقوی استفاده کند مثل شیر عسل صبحگاهی مثل آب سیب شامگاهی با عسل و مثل سرکه طبیعی سیب رقیق شده در آب و آشامیدنی سالم که دو قاشق خوری یا یک قاشق بخوری بود توی لیوان آب حالا اینها بچه‌ای با اسکلتی مقابل تر موهای پرپشتر ناخونهای محکمتر به دنیا میاره حتی دندونهای این بچه در آینده که در میادا در طول زندگی ها دندوناش هم دچار آسیب کمتری میشه چون که در حاملگی زنان احتمال دیابت هست احتمال دیابت زنان باردار در سماه اول بارداری کمه. ولی در سه ماه دوم و سه ماه سوم از بارداری احتمال دیابت در زنان حامله بیشتره زنها و دخترهای بالغه تا سی سالگی مکزیموم حامله شدن دارن پس به بحانه گرانی و تورم یا سوء تغذیه فرار از ازدواج شرعی و قانونی نکند که نه جامعهشون پیر بشه مثل جامعه پیر جهانی در سال دو ازار و, سیزده و چارده و نه فسق و فجور در سطح جامعه خانواده فامیل همسایه محل و شهر منطقه و جهان زیاد شود و از شب به روز رسد حالا تو بحث خودمون که بحث ظاهری جسم رحمه تو بحث زنان میگیم این زنها و دخترای بالغه تا سن سی سالگی مکسیموم حامله شدن دارن از آن به بعد کم کم قدرت باربری در آنها ضعیف میشود از سن سی و پنج سالگی به بعد بسیار این شیب ضعف بارداری بیشتر میشه حال که گرونی و تورم و سوء تقضیه و تأخیر سن ازدواج است. این بلای اجتماعی تو جوامع بشری زیاد شده حتی تو جامعه ایران. آنان سن یا استگی در دختران و زنان اومده به سن سی سی پنج سالگی. ای که دیر ازدواج میکنه کی میخواد بچه داشت. بعضی هم جاهلانه و قافلانه، کپی رایت کورکورانه از قرب و شرق. باز از این متخصصین زنان و زایمان درخواست میکنه میشه ما چند سال هم جلوگیری داشته باشیم تو دارید دیگه پیروپارتال میشیم باز میخوای جلوگیری هم کنیم چقدر تو روایات شیه داریم اهل بیت اسمت و طارد. شما ملت ها رو دوست دارد انسان ها رو دوست دارد همچون خدای رعوف بالعباد میگه از سعادت یک مرده هنوز نمرده نسل خودش رو ببینه نه نسل باشیم و حمال قرد و الان میخواد حمالی هم کنه لعقا حمال خودش باشه رضا امام صادق علیه سلام میفرماید از سعادت مرد اینه هنوز از دار دنیا نرفته نسل خودش رو ببینه یک نسل سالم یک نسل با عافیت و امنیت یک ذریه طیبه دعای همه انبیا و مستنین از جمله حضرت زکریا بوده رب هب لی که ذریه طیبه انك سمیع الدعاء اینکه آدم آدم اصل باشن انتظار صحیح و بجا داشته باشه برای ایجاد نسل سالم همچون حضرت ابراهیم خلیل 120 سالشه حضرت خانم ساره هم 90 سالشه قابل از همه متخصصین قربوشه در زنان و زایمان بسم الله یه چقدر جوجه این فسقلی تو سی سی و پنج سالیگی مندین لقاه مصنوعی بیا بیوسپی کنم چیکار کنم 35 سی, سی و پنج سالگی این هم جوامع یا اسه میشه از ابراهیم خلیل یاد بگیرین که به اذن خدا 120 سالشه حضرت خانم ساره 90 سالش ماشاءالله ماشاءالله یک کاکل پسر گیره قربون این پیرمرد با معرفه ولی الان گاهی جوان و نوجوان شولول الکی الاف کپیرایت رایت کورکورانه از غربا شب نه دنیا نه آخره درود بر جوانان و نوجوانان عزیزی که با مشورت پدر و مادر و تحقیق و پژوهش انتخاب احسن میکنم. به درستی یک زن یا دختر شایسته و بایسته انتخاب میکنن. و ازدواج قانونی طبق مذهب خودشون و یا شرعی طبق مذهب اسلام دارم. الکی خوش علاف نیستم. ازدواج شرعی و قانونی مکمله تو بحث اخلاق حسنه مکمله تو بحث دین عملی فقه عملی مکمله تضاد با پیشرفت فرد و افراد نداره حالا مؤمنا این آزمایشات جدید تو بحث زنان و زایمان مثلا حاجق این تخمکش ضعیف شده میتونم آمپول هورمونی بزنم خب بزن مثلا آزمایش جدید تخطان آنتی مولی رین این ها جدیدترین آزمایش مثلا آزمایش جدید تختان آنتی مولی ریان. که میاد هرمون تختان رو فعال و تخمک های نارس رسیده که تختان رو قدرتش بالا میبره در ایجاد تخمک رسیده به توسط این قده در آن ریز که تختان زن. اگر زنی حامله شد به پشت نخوابد؟ به شکم نخوابد. چرا ؟ زن حامله به پشت نبایستی بخوابه؟ چون خونرسانی به جنین مختل می شود. و به شکم هم نباید بخوابم چون دیوانگی و حماقت است زن حامله باید به پهلوی راست یا به پهلوی چپ بخوابم گرچه به پهلوی چپ بخوابم بهترم و مستحبه چرا چون خونرسانی به جفت و جنین بسیار راحت تا بهتر انجام می شود. یادتونه تو محلول آب سرکه گفتم محلول آب سرکه بخوریم تو بحث جفت جنین استوارتر میشه. دو چهار لکه بینی های مکرر در ضمن حاملگی نمی شه. بعضی خانوما هستن رحمشون دو شاخه به اصطلاح تخصصی زنان و زایمان رحم های شاخ کامل یکی از علل اصلی سقت جنین است زایمان زودرس یا پارگی کیسه آب یا سقت جنین می آورد زنای دارای رحم های دوشاخ خود رحم مثل یک گلابی گلابی دیدیم؟ این برش بیشتره باریکتر رحم این یک گلابی بعد روحش میکنه بزرگ میشه در زمن رشد جنین رحم دو شاخ مومن این فاصله میافته پس این گلابی اینجوری دونستش کن در زنان دارای رحم های دو شاخ کامل سخت جنین مکرر دارن اما عقیمی و نازایی ندارن حالا با بعضی جراعی خاص یا یه نحوه مدل خاص در بارداری میتونیم این جنینش نگه داریم و سپس زایمان کنیم. نزیر کسی که سوء تغذیه داشت تو هنگام بارداری و رشد جنین در ماه دوم سوم باید باشه به مقدار کاپی نباشه سخت جنین میشه پس مادر در ماه دوم سوم اصلا نباید سوء تغذیه داشته باشه کسی که از خانوما سنش بعد از 40 سالگی زخامت رحمش در داخل باید 10 میلی متر باشه اگر زخامت رحم بیش از ده متر باشه اینجا احتمال فیبروم رحمه یک لاپاراسکوپی میشه مامنا معاینه داخلی میشه با دورمین این متخصص زنام که خودش هم خانوم متعهدیه حالا معاینه میکنه که ذریب فیبرومش چقدره که خون ریزی مکرر داره ها سخامت رحم بعد از سن چهل سالگی نبایستی بیشتر از ده میلیمتر باشه خدا بعضی از این متخصصات تو طب نوین در بحث جرای کارنت تو مسائل پایین تنه زنان میان پیشنهاد میکنن کرتاج تشخیصی را کرتاج تشخیصی را. به خاطر که ببینن آیا این فقط فیبروم عادیه یا مقدمه سرطان رحم و آیا اگر فیبرون عادی هست سلول های دهانه رحم رو هم تحریک کرده به نوع اجعیش یا متاسیان که تومور خوشخیم باشه یا سرطان بدخیم دهانه رحم باشه رضای یه بیوسفی میکنن یه نمونه برداری میکنن پس این اسمش چی همون جون؟ کرتاجه تشخیصی بایستی یک کرتاج تشخیصی شود و یک بیوسفی به توسط یک پاتولوژیست یعنی متخصص بافت که سلول های جدار داخلی رحمی سرطانی نباشد که احتمال سرطان دهانه رحم چی میشه امجون؟ بالا میره بعضی خانوم ها هستن هنگام حاملگی دردهای زیرنافیشون زیاده به استانات رحمیش رحمیشون زیاده. حالا این دادهای شکمی یک علتای زیاده. یکیش اینکه کم خون، یکیش اینکه سوء تغذیه داره، یکیش اینکه محیط خیلی سرد شده و این لباس گرم نداره. حالا یکشام مبایسه خودمون. گاهی حاملگی این خانم حامله در خارج از رحمه. یعنی اسپرم شوهرش با تخمک زن که لقاح کرده پشت شیپور فالو شیپور لوله رحمی این باید ریله بشه تیه سه روز از اینجا بیاد به جدار رحم به چسب لانگازینی کنه و این سلول تخ روش کنه به تصاعد هندسی گاهی میبینی پشت شیپور فالو این تختان زن شیپور فالو بعد آغاز لوله رحمی تخمک رسیده توسط شیپور فالوب گرفته میشه پشت شیپور فالوب ابتدای دوله رحمی انتظار نوشه اسپرم شوهر از واژن اومده از انتهای واژن و محبل اومده رحم رد کرده دوله رحمی رد کرده رسیده به این اون برکته بعد اسپرم با تخمک لقاح کرده سلول تخ شده حالا بعد رله بشه اینه تصمی نقاله رله بشه بیاد تو رحم بچسبه جدا رحم حالا یک مطعم وسطای وسط های لوله رحم یا انتهای لوله رحم قبل از این که بیاد تو رحم ها اینجا میچسبه و شروع میکنه روش کردن گایی هم ها انتهای محبل و واجنه قبل از اینکه که وارد رحم بشه هم تصال فهمونی هم این تخمک لقاح شده افتاده حالا جدار رحمش لیز بوده مومن حالا هر چی بوده خب یا حرکت شدید داشته حالا این خواست چسبیده به انتهای محبل انتهای واژن حالا اینجا روش میکن خب جنیم خواهی اینقدر بزرگه مومن هم دونیم کلیو سه کلیو ها یه لوله رحم که جا نمیگیره یا انتهای واژن که جا نمیگیره حالا اینجا میان با جراحی از اونجا برمیدارن میکرن توی جدر رحم تصال فهمودین هم یه سناگرافی میگیرن مومن هم یا اندوسکوپیک میکنن بعد اینه با جراحی جاش عوض می‌کنم. حاملگی خارج از رحم مثلا در لوله رحم یا انتهای واژن که توضیح داره. این درد‌های شکمی میاره. نخیال کنه قولنج معده داره مثلا یا بیماری های غیر عضوی معده از دست و گوارش داره. نه این با اون فرق. اگر پیش متخصص زنان باید بزید. خب ذات سه روزم طول میکشه که لقاح اسپرم و تخمک که سلول تخمه بوجود وجود که انجام شده در بله لوله رحم که لوله فالوپ وارد رحم بشه و لانه گزینی کنه این اون تا اینجا مؤمنان اللهم صل علی محمد و محمد فرجه